و هر فیضی ناطحین معصومین. و رحمت رحمتی کیار رحمت الله. که معنی شیخ و خصوص و جکان اولیش رو از که بعد از مرحوم شیخ هم از خواب قرده صلی اللہ علیہ استاد در نسباق و حسوم از کنیم ما برای بحث و این کتاب مرحوم استاد ایشون هم واده بحث و هم که به خصوص محترمه که مرحوم استاد در این بحث سه مطلب رو بایان فرموندن که دیروز اشمال شدشت بعد از اون یه تضییر رو فرموندن با عنوان زیگ برس و به اصطلاح قول روزی و پاوردی و خامه شدن و اون به یه مناسبتی متعدد اقسام دلالت شدن دلالتی که داریم یا دلالت است یا دلالت تصویریم دلاغت تصدیقی با هم به جب به نفر مراد یا ارادی استعمالی و, و تصدیقی دیگه به نفر مراد جدی مراد استعمالی دیگه از مرادی جدی توضیحاتش رو اجمالا دیگه رو و مناش که چونی کون متعرض شدن این مقضا به بحث خود جهد خود این بحثی نهسته چنون بحث در عوائل علم اصول در اونجا شده. توضیحن هم از که خود حقیقت ورز رو در کساب اصولی ما یعنی اصولی کنان های ما متعارف شده توی مقدمات علم مثلا در کتاب های مقدمه که دوباره به برزه. سیزده مقدمه اینجا در برای که خواهی آمده مقدمه دوباره جیب ورزه بخص ورزه آرام اونجا مفرک کردن تشکیس ظهورات عوامه و نواهی بود به استقاله مطارق و حوضی ایمان در جده اول مفرک کردن اصل حجیث ظهور رو اینجا مفرک کردن تو بخص حجیث نظر با عنوان یکی عرضونی که به خصوص حجیثه این برشه بخص و هست که به نظرمون دارش درس نیست این توضیحاتش به که من یاد یادآوری، اشمال از بحث از ذهنه آنجای من باشیم مردم اصطاقردن از اللهم نفسی فرموندن درادن خیلی اخصاصی ایشان ندارنه خودش ایشان پره فرموندن حتی که اما چون محور درست و کتاب ایشان پرموندیم از اینجا هم شده رو جوند ایندار یک مجلول تصوری داریم دیاره تصوری به قدیشان یک مراد استعماری داریم مجلول به نحو مراد استعمالی دلوقت. یا به نحو مراد جدید. در مجلول بحث مجلول در ارزدشون مجلول تصوری اشاره کردند به مسئلت خودشون در باقه رد از سر که پیشان معتردند اجمالند الان توزیه شمید رو درست کردیم اونجای شدید نازواری ایشون حقیقت غرض و حقیقت لغت رو یه نوع تحبت و ارتضام بودونند که ما عرض کردیم در حقیقت این مسئلک محتمی میشه بر این که بین لحظ و معنا رابطهی نیست ایجنه رابطه ای وجود نداره. فقط اون مقداری که من ارتضام میدم تحبت می‌دارم. من مثلا تعبود دیدن که گفتم آب مرادم اینه و دیروز توضیح هرمز در این نمطه حدود قدره مرمون است این تعبود به ایتزام در دو مرحله تفهیم و تفهمه یعنی اگر من بخواب اون معنا رو به شما تفهم کنم لحظه آب رو به کار می و می‌دونم شما هم لحظه آب می پهمید لذا و از یک حالت اجتماعی به خودش پیدا بکنه هم من تقریم اون معنه می کنم و هم می‌دونم شما هم تفهم اون معنه کنید و شما هم که این معنا رو می این می که من تقریم اون معنه رو کردم و در حقیقت هر دو طرف یک نهز تقریم و تفهمی دارن اینکه یک طرف باشه حالا یکی شبیه ایجابه یکی شبیه قروبه یکی شبیه تیل یکی شبیه انفعاده حالا رو از چین پس حیرت وقت عبارت همین نکته ای که انسان در تقیم و به بفار میبره چیزی ماورای او وجود نداره لحظه آب با مواقع مایه خارجی ارتباطی نداره من قرص میکنم التضام دادم تعبض دادم هر وقت گفتم آب مرادم اینش میتونم شما هم این میپنیم ولی بله اگر شما این نفهم خب نمیگم بستون اگر شما لوقت این گریزی نیستین نیستیم خب من این گریزی رو برد نیکن خب یعنی هم تفهیم درش هست هم تفهیم هست طرف مقابل هم اینطور هم این محنا رو میپنه هم میگه این که گفت آب مرادش این لقمایه یعنی اون هم هم تفهیم داره هم تفهوم ده. غیر از این تفاهم متفهم دیگه واقعی نیست. حالا یه مثال خارجی چون دیگین مثال خارجی اندا کردم ببینید شما هر چند تا دکمه درودی دارید یه دکمه رو شما ببینید روشن میشه. یه دکمه رو شما روشن میشه. یه دکمه روشن ببینید هستم بخاری روشن میشه. خب شما که راضیه اصلا این دکمه ها و اون چرا چرا هر دکمه ای چیز دیگه رو تن این کسان نیست که خواهی ما بین الفاظ و معانی رابطه هست چرا شما آب میگید یه معنا رو میاد نارویید معنای دیگه میاد خاص میگید معنای دیگه میاد این مثل همه دو اما این تصور میگه نه این مثل امروزایی همین لمسی برست شما مثلا دومه پشار نگاه میکنید به چراح چراح روشن بوشن رابطه ای سی میگه شونید دقیق میکنید دست دیگه میگه به همون دومه دست میرم بیشید دیگه همون روشن میشه اون مهداری سه شما میخواییم دیگه هیچ رابطه ای نیست از درس کردم در عباره دوستا سر عباره شون قلقه بود لیکن قلقه نیست بنابر مسلک تعهد مسلک تعهد در حوزه های ما در حوزه اصول شیه. به صورت حبیدی اونی که به شنصفت داده شد که من احتمال میدم بعد مرحوم محقق غیر او هم نظرش همین هم نظر شاهمی مصلح بوده. بذارش میگم در شرح مبنای توضیح میدم. به هر حال رسما موضوع رهاوردی در تشریح اصول داره در مدانی اصحاب ما این کتابی که در روزهای ما است. و بعد از ایشون مرحوم آیه هاشم نرزای ساهانی قدس الله نفسه کتاب وقایع العذان رو، این کتابی هم نقد فلسفی داره. این کتاب اون‌قدر بیشتر مشهور شده. به نقد فرسته داریم مرحوم آیه سانی قضا سالانه چیز رو خواهیم؟ مرد بزرگوار محمد چهل و قضیس ایشون هم مصر به این مسلک اگر بخواه اون خصوصیات مسلک رو بامخصا این وقایت از ایشان خیلی خوش عبارت و دیوانه دیبانهی داره من کمتر یادم میاده الان که یادم نمیاده خودم اصولی ما داره این معنی دیوانه باشه خیلی ادیبانه ای قیاس زبان ایشون chape de iran tulle کتاب رچنگی سو اینجوری بحث و گز رو هم جای ایشون قابل مسئله تعبده معنی انسانی نمراد من خاطر سالی معروف فرانسه ایشون مرواشر تو ایشون به اسم دیگه معنی بحثیامی مسئله بحث شدی بحث یه دیگه دارکتر اصلا خاصن از این خاندان علم هنوز اصلا هم بیدیم که و بعضها هم مرموم استال آقای خویی آقای خویی هم مسلک تحبود رو کردن در خوزه های خود ما این متعالق ما حالا کار به خارج نداریم ازده همین مسئله تحبود رو حبود کردن که به نظر ما نتیجه هم از طرف دیگه چون ورد یعنی لغت رو برای تقسیم و تفهم به کار برده شده و این تحکیم و تفهم یک حاجت تصدیقیه نه تصوری یعنی مثلا مخاطب یا آب بیا نان بخور یک محکوم تصدیقی لذا ایشون قائل هستن که دلالت وضعی که در اصطلاح هم مثل دلالت ها دلالت وضعی فقط همون دلالت تصدیقی این دلالت تصوری که قسم اوله این دلالت این دلالت نیست این به تغییر در بر اثر کنسزن پیدا شده و لاکه ضلات وضعی که با عنوان وضع بشر وضع کرده همون دلال از یعنی ان اون که ما دادیم که مازیمتحودی که داریم در همون دللار تصیری و نکش هم خودتون اینجا اشاره و بوددم صابق من هم چرا هم من عرض کردم چش اینه که اصولا علت غایی او تعمین کننده یه نههایی کارها علت غایی از ورز تفیم و تفاهم تفیم و تفاهم با دلال تصوری کنار نمیاد، با دلال تصدیقی چون حاجت ما و نیاز ما به ورد یک مدیول تصدیقی به لذا اون چیه که ما ورد کردیم همون مدیول تصدیقی بله بر اثر کسات استعمال مثلا ذهن ما یک اون سی کرده که لفظ آب رو هم به پنهایی که میشنون یک معنی به ذهن میان این مال اون سینه، این مال قرارداد توش نیست. این چیز لفظ نبود این حاجت نیست. شما دهن باز بشه میگی آه، مثلا در خود درک. میگی مثلا صدای چی خودت میگی آه، ما ولا آهو نمیفهمیم. این لفظ زن نباشه. سنگی بگو مثلا میگی نان، مثلا فارسی میگی مثلا نان نمیجاری. ما کلمه مفهوم نان به ذهن اون خطور میکن این لفظ نمیخواد. متکلم هم نمیخواد. این دنبال تبیین و تفهیم نیست، این دلالاست. این دلایل در اثر اون سوزه این فکر میشه که من نمود عرض کردم احتمالاً مراد از اون سوزه همون بحث اون که الان در حوزه روانشناسی با عنوان تضایع معانی تضایع معانی یک امر واقعی است نه امر اعتباری اون امر واقعی اینه که چون انسان چهرزا رو بعد در وقت چهرن بیشتر در سلسله خود شروع خودشون در توضیح این مبنایی که ایشان اختیار فرمودن از که به نظر ما میاد که این مبنا را توی انتخاب بکنه که بحث حجیط زباقه هم باید روش تأثیر بگذاره حالا ایشون محال تأثیر نگذار به نظر من ایشون هم باید در نزیجه تن با محق قومی هممسلک باشن که حالا بعد توضیحش هست ما راجب این مسئله توضیح هست. هست کردیم هست مباحث در ثابت گذشته در کتب اصول ما این اصول متحصیل ما از این بحث وحث قدیمی است بحث وحث لغت واضع در کتب قدیم لغت در کتب تفسیر در کتب لغت از دهی واضع اصلا واضح خداست از علمای ما هم از این فکرهای متحصیل مشهور ما هم مرحوم نائمی واضع رو خدا میگونه یعنی اعتقادش اینه که بشر واضع نگرده این سابقه داره این بحثی که ما داریم در اینجا الان این سابقه داره واکه شاید بی این تنظیم در کتاب‌های قبلی کمتر باشه مثلا شاید من دقیقاً می که همه صفحه چاپی رو نگاه نکرام ببین این تنظیمی که الان در کلمات اصولین متأخر ما اومده تقریبا چند و اون تنظیم رو با اضافهاتی بنده دیروز عرض کردم اکثر این تنظیم هم با این ترتیب بنده مؤثره در نهده در کلماتی مثل استادین ها را از که به طور تقسیم کلی اینجوری تقسیم بکنیم رایتی به وضع دو مسئلک اساسی اول قائل میشیم مسئلک کسانی که یک نوع رابطه بین لحظه معنا قائل مثل مثال کلیف که از دادن دوم دو کسانی که رابطه بین و معنا قائل نیستن این مسئلک تعقب میدونی کسانی که قائل به رابطه بین وضعه لذا معنا هستن به طور کلی به دو باز دسته تقسیم میشن کسانی که این رابطه رو را حقیقی و واقعی میدونن کسانی که این رابطه رو را اعتباری و جعلی و قراردادی میدونن حقیقی و واقعی نمیذارن کسانی که این رابطه رو را حقیقی و واقعی میدونن این هم باز به چند مسئله بیشتر تقسیم میشه یک اون رابطه نهر رابطه الهی و معروفی نهره علت تامنست از کنم در متکلمین اسلامی ما شاید در روز کتار سال قبل به عبور حسین بسری چون کتارهاییشان ساده چاپ شده من نبرم احتمالاً اشکه راباییشان مثل معتمدین هم باشه احتمالاً امره معتبر. ازش نهر زیاد دیدن اما خود کتار رو نیکن حلایهانه ما از قدیل در میان متکلمین اسلامی این روز معتذر ما این رعی رو داریم که های به اینهای رابطه و معلولی به نحر علت تام است من معتقدم از کردم در این کلمات آقایان نیامده اگر ما این رابطه رو رابطه ایلی به نحر علت تامن نمیدونیم با توی زواهر هم دنبال همین رابطه واقعی بریم این از کرد ننویشتن آقای آره. یعنی معلومه استاد بحث مجبور تصوری رو اورده بعد مجبور تصریحی به نفع استعمانی و بعد به نفع جدی باشه رد نشده به نظر بعد رد شده بکنه عادتاً بعد رد شده بکنه یعنی اگر که شما مثلا سعی کنید قوانین فیزیک رو کشف بکنید واقعیت این در حقیقت اینه یعنی شما وقتی میشوی یک چیزی حرکت زده به نفع قاعده الی و معلول بعد دنبال علت و معلول و, شده و ازش این چینو چی شد و عرضش غالباً اینطوری میشه یعنی تفسیر ما از ظواهر بر اساس تفسیری است ما از رابطه در مرحله دلالت تصوری قائل هستیم به هر حال مسلک اول به نهر علت تامه است یک نوع ارتباط تکوینی به نحو علت تامه مسلک دوم به نحو معتزلی علت تامه نیست اما مختزی بوده که اینها بیشتر هم مسئله این که الفاظ فراوان و معانی متعدد متعدد ما چرا لحظه آ برای این مایه گذاشتیم نان روم گفتیم خاص نگفتیم مثل ترجییه درامی اون ن هو که گفته شد من مورد اون بحثیه این اینجاین میخواهم بشم چون در محل خودش این بحث گفته شد. مثل که سوم این رابطه به نح یک رابطهری اادراکی ذهنی که اونم واقعیت داره نه این اونونه اعتباری باشه. این مثلکی که در کتاب موم های مزففر با عنوان صدایی آمده. و مرهوم اصال با اما دلالت و انسیه بردن احتمال داریم که مراد همین باشه اینم هم در حد احتمال لده تدایی مانی رو مالی دید دیروز من توضیح تدایی چون مانی امر واقعی اون امر واقعی اینه دید عرض کردم خلاصش اینه انسان در مرحله یاداغر یادگیری وقتی که یک چیز رو در زیر یادگیری دارمان در انسان هست من در ی چه این که در هر ثانیه 5 میلیون مطلب در ذهن ما نشون میده؟ این توصیل کریی، این هر انسانی در هر ثانیه ی 5 میلیون که آیه مبارک ماله هادل کتاب که همون نهس انسان، لای و هادل رو شما گفت اغراق کتاب کتاب بنفسه. لای و هادل رو شدید است و شدید است، زمانی 5 میلیون ها رو اون چند لیتر آورد برگرده در هر ثانیه ی قرار نیست که این تعلیم و تعلیم در انسان هست. اینطور این نیست که خیال کنیم مسئله یادگیری خصوص این مثلا در درس بشینید این مورد از یادگیری این اصطلاح در این یادگیری ایده از, از مسائل که با هم دیگه هرو هیچ تابه اونها ارتباطی نیست و چون بین این زشت و صد با تبیع من ارتباطی نیست هیچ ارتباطی بین اونها, اونها نیست این ارتباط تو مرحله یادگیری تو ذهن میاد این ذهن اندر است اندر اتواری توی مرحله یاد آوری. شما یاد از تشبیه می کنین یه یاد از زبطه شمتن می ببینید یه دفعی اصطلاحا می کنیدن تدایی معانی یعنی در ذهن نقش بسته مخانیی که در ذهن، معانی و سوالی که در ذهن نقش می بنده اینا یه نوع همخانی دارن یکی شد یاد آوری بکنی دومی دو و ثومیش هم این رومان اصطلاحاً اسمش بذاشتیم مسئله تکمیلی لیکن به نحوه ادراکی یعنی به با... واقعی است یعنی به نیست این سه تا که احتمال دادیم مراد اصطاق این باشه از سردم یه این کلمه قدایی زودتر دو دنیایه حوضه های تفسیر رو برد با کردن به قدایی معانی چهارم، مسئله که چهارم دیم رابطه قریضی اسمش بذاشتن برده اونم یک عمر تکمیست اما واقعی بر نیست یک نوع رابطه غریزی بین لفظ و معنا. ا کردن این رابطه غریی در اصطلاحات روانشناسی جدید داتر ان 1920 اون پالو که روسی تبه گرفتناسه سر و زنگ زنگی که میه، از چند در یک کتابی از تناسل امی در رادردرسون انگلیسی انسانی مامای روسیمال انگلی میکن حالاص شاید چه باشید که، قضا برای اون سک حاضر میکردن زنگم میده همراه بزور قضا بعد از 21 بار دیگه قضا رو حاضر نکرم من فقط زنگ زنگیم همون بهانه بلا این ساید سک شروع کرد به ترشان بزار یعنی بعد از 21 بار یه رابطه بین زنگ و قضا ایجاد کرد زنگ و قضا زنگ منشب میشه که مثلا حیوان دهانش بزار ترشان بکنه بسی که آمده از رنگ زدن رو حالا پس او زنده رنگ زدن کف زدن نسان هر قضان روی کف رو زدن چرا رو چند کنن بو رو بزنن یه رابطه این رابطه خودش انسان ایجاد میکنه لیکن این در ذات حیوان به عنوان یک وجود داره این جعلی نیست این در ذات حیوان این جعلی نیست اون طرفش که جعلیه طرفش جعلیه خود اون رابطه جلی. یعنی شما میتونید این رابطه رو با تفزدن. کف زدن، قضا کف کج بزنیم مثلا قضا چه چراغی برای توجیه کنید قضا بیاین بزنید قضا چه بیاین دست می‌پَرش بکشیم میتونید رابطه رو با اسوال دیگه نیجاد ایجاد بکنید قضیه یعنی تو و, بوده... همین و این طرفش رو بعد یاد گرفته اما خود رابطه واقعی ارز کردم دیگه یا دعایی که داشتن ارز کردم من معاضی ها در مطاله وضع میگه رابطه بین لحظ و معنا یک رابطه واقعی است، لکن طرف رابطه جلیه شایده خود در آقایی محبوب مصطدار بزنه بگی ازده یه کردن که ای اصلا معقول نیسته هم رابطه واقعی هم طرفش قراردادیه من از از کردم به مرموم آزیه خیلی اشتار شده و واضح واقعا هم خب مرموم محطای اراحی مرد توقع عاده دریلی تنید اصولانی که از خصائص مهم ایشان فکر کردن خیلی فکر می کرد ازمان الله تعالی غذایه های نهار می از این جرد مرموم استاد اونای بزنید که همون بیشون با این که والا شاید مثلا مصلح فلسفی رو ناییده بود اما از بس مرد تو غلاضه دقیق و فکری بود مطالب فلسفه را به حسب اصطلاح خودش می‌گفت خودش به اصطلاح به اصطلاح صحبت نمی‌کرد اما معلوم بود که کاملا مسائل رو درک کرده این مثالی رو که مرحوم عازیا پر می‌دند من احتمال می‌دم یک مراد ایشان به یک مثال بسیط و عرفی باشه این احتمال من البته و میگم شاگرده آزی های که آنها اینکه شاگرده آزی ها نیستن اشتال کردن جای خودش اونها که شاگرده آزی ها هستن اونها اشتال کردن اون احتمال میرم شبیه سیمه درد اینشان میخواد تشریح بکنه شاید یا زیر نموالا کشون که شما بینید رابطه بین کلیب و اون شراب وجود داره این رابطه واقعی این رابطه جعلی نیست اما شون رابطه باکتی اول قابل توضیح می کنه باکتی دو باکتی را توضیح سوم طرف رد جعلیه خود رابطه با من یک احتمال این میدم یک احتمال میدم که ایشون همین نظریه رو که من عرض کردم espèce غریزی بودشین مرادش این باشه دقیق سوزی دادیم از این در کتب شناسی فالسی تعبیر شده به انگیزه های شرطی شده انگیزه ای الاکن این ها عوامل یعنی به عبارت اخراد بعضی از عوامل طبیعی هم مثل حضور خضا و تلکشوه بزار بعضی از عوامل طبیعی نیستن مثل زنگ زدن و تلکشوه بزار این طبیعی نیستن زنگ زدن با تلکشوه بزار رابطه این هستن عامل غیر طبیعی رو اگر همراه بکنیم با عامل طبیعی نه کنون روان شده این باره بحثایی خوبی شده چند بار هم همراه بشه تا تأثیر بکنه بعد اگه بخواییم بردارین چند بار بار خط اشبه کنش رو بردارین بحث خاص و حال شد ما خیلی هم گاهیم بحثاییی بخواییم اینجا بشیم اون بحث اینه که ما یک عوامل غیر طبیعی داریم اون عوامل غیر طبیعی میتونن به سبب همراهی با عوامل طبیعی مثل ع یعنی شما وقتی که فرض کنید مثلا آب رو جلو طرف میاری یه حاله میشه وقتی میگی آب لغد آب هم به کار این ارتباط پای که این لغد با اون مایع خارجی ارتباطی نداره اینا دیگه این یک اعتراضن که لغت از این قضیه پس احتمالا عرض کردن احتمالا چون ما داخل اون زمان نبودیم مرحوم اصلا این اصطلاح شرط شرعی اصلا بعضها در نوامع ما هستند مثلا اصلا تاریخ خودی این اندیشه در دنیای علم امروز رسمت اونجوری که من میگم باشه که من صادقی مراجعه به مواجهه ما بدارم مال از 1920 میلادی تا اینکه سال کمتر این مطلب خودی این مطلب دقت بکنید این مطلبی نیست که مثلا مال 7 سال باشه این ویژانی ماست اشتباه نشه این مطلب که ممکن است یک عامل غیر طبیعی همراه بشه با عامل طبیعی و بعد تاثیر بکنه یعنی اون آمنه قیل طبیلی بیاد اثر بکنه این یه نیست که آلو شد. این درستان ما هست که ما میدونیم از, از این اصطلاح و بعد لباده به علمش این تازه اصطلاح انگیزه های شده یا به اصطلاح عربی روز الهافظ با باهای حتی و ته وزه اخترا زا اخترا حفظه او یعنی او رو وادار کرد یا حرف بزن الحافظ المشروط همون انگیزه های شده یا الحافظ المشروطه انگیزه های شرکی شده همین اصطلاح فارسی ماست از کردم به عنوان علمی و زوابط و روابطش این خیلی تاریخ در آن اما به عنوان واقعی تو زندگی ما بوده شای در بحث سابق هم از کردن این مسئله انگیزهای انگیزه های شده رو در کتاب مستصفا اوائل مستصفا ق در توجیه خسن قبل عقلی میگه این نصی 900 سال ده هست میگه اینه که ما بعضی از افعال را حسن میدونیم نه اینکه اون فعل حسن چونیشون مونی که خسن قبل اون فعل حسن, این فعل, حسن. این فعل مقارن شده با یک نقطه مثبت ما به این دوستا چند کردیش شد که این فعل حسن هست مثلا راست گفتیم که من بار کلا یه دو دونه دو مثلا, دو مثلا, مثلا یک سوره بازار پرس مول دوباره گفت مثلا یک دونه پس و مثلا با مثال یک شیرینی بشه مثلا شیرینی یک شیرینی این میگه میاد ذمه انسان بین این دو رفت راست قرار میده و نتیجه گیری میکنه که سر حسن سر حسن نیست چند بار یا دروب گفته کده کرده چرا؟ جهلی این در ذات ما وجود داره این خرا... اعتباری میتنم خرص جلی. جلی. این داره این, خرا... خرص جلی. جلی. این, این واقعی که نفس اگر تگاه میشه واقعا نقش ادراک میکنه اگر برداشت میشه واقعا هم قریصه اینسانه من احتمال از که چرارا عرض میکنم چون میگم در کلمات هستان مثال بزرگی استاد ما از درستان لا نفس و کشاگه لا این مطلب نیامده احتمال میگم که منحوم آزیا با اون حوش واقعا ها با اون دقت نظر نظرش همین نظریه انگیزای شخصی کده باشه این نظر مروضیا میگه یک نوع رابطه واقعی هست اما طرف رابطه جعلیه خود ذات رابطه واقعیه از مثلا مثال خیلی بسيط این دو مهره بغله یکم نظر مروضیا نظر این مثال بسيط باشه خب ببین این دو مهره بغله رابطه واقعی ثوته جعلیه نه این دو مهره اول و اون چراخه این جعلیه دو مهره دوم باخه میتون جام جا بکن این جعلیه طرف رابطه جعلیه اما خود راهش واقعیه. که من فکر میکنم با تأمل در کلمات ایشون این مطلب انگیزه‌ی شرفی شده پی برده بوده ولی اصلاح رو به کار اصلا اون زمانی اصطلاح نبوده که ایشو به کار ببره. و خلاصش اینه که انسان بلکه هر انتظارات حیوان یک خصلت غریزی داره. این خصلت واقعی، تکیه، اعتباری نیست. این مسلک چهارم این مجموعه چهار مسلک رو ما قرار دادیم در کسانی که قائل حسن به ارتباط باختی اما کسانی که قاهل به جل و قرار دادن اون سه بومی ادراک ذهنیه قریضه نیست اون ادراک ذهنیه که ذهن در مرحله یادگیری رو رفت میده هیچ رفتن به هم ندارن. این نه اینجا این نوع ارتباع تیلان میکنه با عامل اصلی یعنی زنگ با همراه ترداد نه اینکه زنگ خودش بیاد مازن این سر اشتای بزاق میکنه هم مثال معروبی که در روان شناسی زده شده این چهار زنگ هستن اصلا به این ترتیب شون در کلمات نرد من خیلی سوار کنم و هرز میکنم شون وقتاً ترمون شده و اما مساله که ارتباعی مساله که ارتباعی بگیه موس همراهی نه همراهی ادراکیزه همراهی باقیه در محره یادیگه همراه واقعییست هیچه همراه اعتباری در رابطه اعتباری من سریع ارز بزن فروش شده چود اگر ماری بودید تو نمیخواستم وارد بحثی این بحثیم نردار بشن در رابطه اعتباری هم خلاصه چیه که هیچ نوع رابطه بین این لفظ با معنی وجود نداره ما یک نوع به اعتبار و جل حرار میدید. یک نوع اعمال نفس حد پیش غیره اعتبار پیش ما اعتبار حد شیل غیره چطور میگین زیدون اصدون زیدون اصد میکنین همینطور میگین آب و مایه خارجی این خلاصه بحث اعتبار وقت کسانی که قائل به رابطه اعتباری هستند در مجموعی که ما کلماتشون دیگیم میشه به چند طریق حسینش بکنیم یکی اشد تا از ام اشدش رو کسانی که قائل به این حقوقیت اعتباری هستند مثل برموم استاد مهای بجنوردی قد از اللانه استه تو منطقه اصول خب خود رو نمیزیم زیادی و در مشایح مواسر ما آی سیستانیم غالب و حوالی. این عشد در انواع اعتباره نوع دوم یک نوع شاید بشه گفت درجه تر از او مثلا که مثلا بشه گفت حالی این دوم دو... دو سوم دو شد که خودن دوم خودن سوم شد ممکنه کم بیشتر مثل کلام مرغو محقق اسلامی ما اشکال نیست الله سالانه میگه از قبیل چهل علامات در راه طروق اینها در راه کسانی که راه میده را مثلا جاده کج استاد از قبیل اون علامات مسئله سوم که مسلک معروف بین این علامای اسلامه چه در کتب نه چه در دیگر کتب نه زیاد تفسیر لغت ماند. این از جز مسالک اعتباری هست یعنی این مسلک تخصیص و حل سرم به این تحبیر شد جایی نماره. اینا نظرشون اینه که یک نوع ابداع نفسه که لفظ رو به معنا تخصیص میده مسلک چارم این به نظر ما از هفه نظر ارتباط یعنی اعتباره این مسلک چارم و اون اختصاص رو لفظه معنا نه تخصیص همین که لفظ معنا رابطه پیدا بکنه این رابطه اعتباری نه مثلا اف علو بر اثر آن کشف استعمال این شاید از اعث انواع اعتباره پس مجموع مصادیق زنجق رابطه در 9 تا تو یکیش نفی رابطه بود 8 تاش اثبات رابطه بود در این اثبات رابطه 4 تاش اون رابطه واقعی بود تاش اون رابطه اعتباریه در روابط اعتباری واقعیش هم که به ترتیب پت گفتیم در روابط اعتباری هم باز به ترتیب از اشدش گل و, و اعتباری این بشه. و از عبش هم اختصاص و لفظه به المعنه اختبال در کتاب کفایش در کتاب این معنه که کفای تعبیر و عوض یه تخصیص و لبضه. این لفظه تخصیص و لفظه در مشهور کتب هست از زیاده اید در خصوص نهوی ترفیج یاد اینا تخصصی در ذهن معنا وضع وضع اصطلاح بسیار معنی و اما هوویته اعتباری نه علتی هست در دنیای امروز داریم اما رسما در حوزه های مذهبی مقداری که الان من در ذهنمه مرحوم استاد آبوجنبی قابل بی هوویته اعتباری بودن که لفظ این معنا میشه حالا یک زیر مسئله اما در اروپا اونم بگیم برای تاییدش در اون وقتی ضرورتاً معرض به ادهاتی گفتن که چرا این حیوان خوب گذاشتن کوک هنری او از بس کثیفه دروش یک رابطه بسیار غریب عین لند خوشاافت کو وسط که کثیفه دیگه خوب, خوب گلشاست یعنی من حيث ماشور تصورش اینه که خو کریم اثر کامل کثافت این نجافت این همان مسلک هویت اعتباری که در ذهن و این همانی یعنی دقیقاً لغز آب رو خود اون مایه خارجی بود این نقطه مثله که یک اجمال در چنین